الحمدلله امروز رحمت الله تعالی باران رحمت آمده است آب بسیار جای خوشحالی است الله تعالی این باران رحمت را سبب رحمت ظاهری و باطنی بگرداند قلب ما را هم شستشو بدهد و ظاهر ما را و برکات خود را الله تعالی با باران رحمت هم همراه نازل بفرماید شکر میکنیم الله تعالی را گرچه واقعا هر آنچه که ما میبینیم از کمبودی و مشکلات برمیگردد به خود ما ولی رحمت الله تعالی بالاتر و وسیعتر از اعمال ماست و از خود ماست لذا الله طلب رحمت خود در دنیا و در آخرت با ما معامله بفرماید این هفته همانطور که شما خبر دارید شخصیت های بزرگ دینی علمی و مذهبی از دنیا در گذشتن حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان رئیس جامعه فاروقی کراچی پاکستان و رئیس وفاق المدارس یعنی شورای هماهنگی حوزه های پاکستان شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه در دنیا را ودا گفتن و به رحمت خداوند رفتن این و علما بود و شخصیت بزرگ علمی و یادگار سلف بود ما در گذشته حضرت مولانا سلیم الله خان را به حوضههای علمیه اهل سنت پاکستان به وفاق المدارس پاکستان علما و طلاب و تمام علمای اسلام و بویژه به, به خانواده و فرزند از حضرت مولانا دکتر عادل تسلیت ارز میکنیم الله تعالی درجات یشون را بلند بفرماید و بازماندگان را اجر صبر عنایت بفرماید همینطور اخوند آبیدی امام جمعه ترکمن هم از علما و بزرگان مازندران ترکمن منطقه هم رهلت کردند الله تعالیشون را هم مغفرت بفرماید و بازماندگان را الله اجر و صبر عنایت بفرماید و نیز در محمد کرد پدر نماینده شهرستان خاش و بخشهای توابع در این هفته در گذشتم الله تعالی را مغفرت بفرماید و بازماندگان را اجر و صبر عنایت بفرماید به هر حال این کاروان در حال سفر هست این کاروان به مسیرش ادامه میدهد همینطور که تولد و پیدایش کودکان و نوزادان هست همینطور از آن طرف سفر برگشت به خانه آخرت و به منزله آخرت هست این دنیا دار ابتلا و امتحان هست و این هوشداره و به ما تذکر می دهد رفتن این وزرگان و رهلت و گذشت ایشون که ما هم باید آمادگی بگیریم ما به جناب نماینده محترم علی کرد و خانواده و بغیه خیشاوندان تسلیت از میکنیم و از خداوند برایشون اجر و می میتلویم و برای گذشتگان مغفرت و رحمت الله تعالی را لذا وقت هم فرار رسیده است و وقت ازان مسلمانان میانمار مورد حمله و حجومه و و هندوها و انسانهای بیدین هستند که آنها را بی خانمان می کننده. دعا بکنید الله تعالی این مسلمانان را نصرت و کمک بکند و دست این بی رحمان و ظالمان را الله تعالی از سر آنها درداره داره به به جان خود بیاندازد اشغل الظالمين بالظالمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين غانمين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بيوتهم وزلزلهم زلزالا شديدا اله و اله العالمين از توان ما وقدرت قدرت ما نیست تو خداوند قادر و توانایی توانا هستی دست ظالمین را از سر مسلمانان کوتاه بفرما و مسلمانان را آزادی و, و راحتی انایت بفرما خدا را شکر کنید عزیزان بر این نعمت باران و نعمت رحمت الله تعالی بیشتر شکر بکنید و بیشتر به طرف خدا متوجه بشید این انعام و لطف و فضل پروردگار است الله تعالی برکات و رحمات خود را هم نازل بفرماید و سلامتی و عافیت بیاورد و آب‌های زمینی را الله تعالی جاری بفرماید زمین سیراب بشه آبادی بشود و این قهطی تبدیل به آبادی و سرسبزی بشود و آخر عن الحمد لله رب العالمين